روزهای مشری روواگتی از سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران به هدف انقلاب اسلامی است این تمدن نوین دو بخش دارد یک بخش بخش ابزاری است علم اختراع صنعت سیاست اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی اعتبار بین المللی تبلیغ و ابزارهای تبلیغ اینا همه بخش ابزاری تمدن است وسیله است یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است که است از سبک زندگی کردن رفتار اجتماعی شیوه زیستن مثل چی؟ مثل مسئله خانواده مسئله سبک ازنوان گلگوی مسئله نو لباس نو خورا تفریحات مسئله, مسئله زبان، مسئله کسب و کار رفتار رفتارهای ما در محل در کار رفتار ما در دانشگاه رفتار مدرسه. ما در فعالیت رفتار سیاسی در رفتار ما با همسیدار ما با خدر رفتار مادر. مادر رفتار با رئیس با مرمور دولت،, دولت ما با سفرای ما، با و ما با دوست، نفتار ما با دشمن، با بیگانه اینا متن زندگی است. ما البته در انقلاب در این بخش پیشرفتمون چشمگیر نیست. اگر ما در این بخش پیشرفت نکنیم همه پیشرفت هایی که در بخش اول کردیم سیاست اقتصاد اقتدار سیاسی و نظامی نمیتوانه ما رو رستگار کنه همجنانی که میبینید در دنیای غرب نتوانسته بنده طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس، در مورد مسکن، در مورد سایر چیزها یک باریکی یک حرکت جمعی و عمومی انجام میگیره نه این کارا باید با تدریج انجام میگیره دستوری هم نیست اینا فرهنگ سازی لازم داره همدی که گفتم کار نخگانه، کار فرهنگ سازانه و شما جوان باید خودتون رو برای این آماده بکنید این رسالت اصلی تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی اون رو میخواد به وجود بیاره بدون این بخش. تحقیب و پیدا نقاهد کرد اگر اون تمدن به وجود آمد اون وقت ملت ایران در اوج ازدت ازدت <تصفح> ایران در